جلسی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و بالعالمین والسلام و السلام محمد و عالی و و مقوم باشی که برخلاف مشهور قائل به عدم اوتیت قطع قطع شده مثل شخص کسی اشک و مشهورم که قائل به اوتیت قد مطلقا بدون قلب بین اسبابش و از اشخاص و بعضی ها قائل به به ای این مناصیتی و که که این ظاهر اول آذیار اویی در نمایش داده و منتهی به سید منتهی، که نمایش در قط قطعه پیان به این مفصلی تم در رابطه با این مبحثی که آیا قبل قطع توضیحات داره یا نداره حالا برابر نظریه که نظریه نظریه به نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه نظریه اونا هایی که قایلن به حسیت حالا شما که بعدم خودم زدن امروز میدن خطبت هایی این که شما هایی که شما هایی که قایلن به ذاتیت و حسیت برای قطعا اونا امتنیم بحث کنن از این بحث حسیت قطع،, قطع یا وساسی یا شکاک یا کسی رو شنگ و امثالیتا اونا قایلن به ذاتی و ذاتی کمای لا علل لا ی تخلف و نه ی هر موردی قدی حاصل بشه بنابر محیار ذاتیت و جیت یا ذات یا ذاتی ولی اونهایی که قائل به اعتباریت و قول به اعتباریت و جیت قد با اینکه که قائلی داره هنوز به یک شهرت التکازی بین توسات علمیه نرسیده این خیلی شفافیت پیدا نکرده و منحصره به یکی دو نفر از اعلام مثل محفظ قصفانی در نهایت و و علامه تبا در بعضی از سالهاشی و در آشیه کفایه و یا بقیه قعد به هم و اون که کهقاعد به ذااتیت چطور این بحث ها را توجح میکنند، اون بر عهده خودشونه. حالا ما بنابر مستد اعتباریت و چیت که بر خلاق مشهور هست داریم بحث میکنیم و میخوایم به قط ها و یا اواً خود چیت قط و قسم دی یک چیت داریم، و یک حوچیت عبالایی داریم حوچیت عقلیه یعنی حوچیت قطع ذاتی و علم وجدانی برا خود انسان این حوچیتش عقلی ذاتیه یعنی هر چیزی که انسان بهش علم پیدا کنه برا خودش حوچیت داره ولی مراد از حوچیت عبالایی اینه که برا دیگران حوچیت داشته باشه قیل از اینکه که برای خود من داره در یک نظام اغلایی و بنابر شعونات اغلاییه و ارتکازات اغلاییه این شی باید حدیت داشته باشه یعنی یک دلیل محکم پسند رو میگن دارای حدیت اغلاییه بنابر این معیار حدیت واسطه میخوره یعنی القط و حجیتون چون اعتباری این حجیت نیاز به یک واسطه ای داره و یقینا به خاطر اعتباری بودنش واسطه در عروض میخواد یه چیزی باید باشه که واسطه در عروز حجیت بر قطع باشه و اگر اون واسطه در عروض نباشه قط حجیت پیدا نکنه و قبلا گفتیم سه تا مقبوله وhamming اختلاف داره یکی کاشفیت در قطع دوم محرکیت هر قطعه و سوم قضیتشه اولی ذاتیه دومی اخزائیه سومی اعتباریه و خلط بین اینها موجب خلط در خیلی از مبانی میشه که منجر به خلط در خیلی از احکام میشه بنابر اینکه محرکیت که واسطه‌ای باشه بین حکیت و قد این محرکیت منشهش دواهیه قطعه به احکام و و شعونات و قلایه اینا یقینا دواهی خارجیه نفسانیه رو داره نیاز به چیز دیگه نداره ازا محرکیت در شعونات و وجود داره بدون این کار بلی نسبت به احکام شرعی شاید دایی هیجار نشه برای انسان علم به احکام داری منتها محرکیت و در کار نیست لذا شار اومده چهار تا شرع رو برای احکام قرار داده. اگر شخصی آره باشه آبل باشه قادر باشه و علم پیدا کنه به حکم حکم برش منجز میشه به خاطر اینکه دعایی اگر بخواد بدون اینها باشه منل ممکنی که شخصی ادعای کنه در من دعایی ایجاد نشد و محرکیت برای من حاصل نشد و حجیت نداره دو عمل نکردم و نیسبت به شورات و قلایه دعای حالا وقتی محرکیت واسطه باشه بین حجیت و قند و این محرکیت متقوم به دعایی باشه و دعایی متقوم به علم و یقینا این محرکیت اختزایی هر علمی مقتضی تحریک قاطع نه و المقضوع به مقتضیه شاید هم اختیار کنه از این طرف شمله منطقه این اختزار و این قصد نهایتش اختزاره حالا این محرکیت از کجا نشت میگیره این نسبت به علم وجدانی و علم خارجی فرق کنه محرکیت در علم وجدانی و یقین واقعی به خاطر مطابقت با واقع که بهش میگن اصابه به اون معنای عقلی و در مواردی که علم وجدانی نیست یقین اصلی نداریم و از خبر واحد و دیگر امور خارجی داریم این پیدا می کنیم اصابه به معنای اقلائیه یعنی موافقه با مناشه و غلائیه اسباب و غلائیه و شعونات و غلائیه باشه اگر قط موافقه با این چیزها باشه یقیناً مصیبه ازا تمام بحثا در قطعه در تا حقوق محوره اصابه میچرخه ال قطع المصیب حجت حالا این المصیبی که واسطه شده بین حجت که حکمه و قطعی که ظاهرا موضوعه اینا ای واسطه در اروزه یا واسطه در ثبوته اگر شما اثبات بکنید که به یکی از انها این واسطه در ثبوته یقینا مطلق قطعه حجت میشه من جمله قطع ولی اگر اثبات کردید این واسطه در اروزه قطعه, قطعه از حجتیت خارج میشه و در این جزوان ما اینا رو خواستیم اثبات کنیم که مقتضای اینکه که محردکیت هست اینه که حضیت حول محور اصابه و می شرخه نه اصابه عقلیه و اینها رو در صفحه 125 که شماره خورده اینها رو تعریبش رو نوشتیم صفحه 126 صفحه شماره های مومیه در بابسته 32 باید باشه فلقف المصیب حجتانه ولی اصابت و واسط فی و روز نوزیه گفتیم تمام بحثا در چه و اصول قول محور همین چیزه یعنی تمام ف... فنون خلاصه میشه در این یک فن که ما تشخیص بدیم واسطه در اوروزی داریم یا نداریم و این واسطه در اوروز هست یا نیست یعنی شما تمام اصول رو بخواید خلاصه کنه در همین یک ست خلاصه میشه و اونهایی که نمیتونن پیش برن بخواهده که تشخیص همین یک کلمه رو ندادن و اگر کسی قدرت بر تشخیص واسطه ها داشته باشه یقینا در موضوع شناسی حرف اول رو میدنه کسی هم که موضوع شناسیش طوی باشه فتاواش منسجم میشه و احکام هم که معلومه مترتب میشه و دیگه مشکلی نداره ولی اگر ما نتونیم این واسطه ها رو تشخیص بدیم و موضوع شناسی خوبی رو نداشته باشیم دیگه متحیریم در بین این فتاها که چی میگن و ما چی مخواهیم بگیم و خودم قول رو مقدم کنیم ولی اگر یک معیاری باشه معیاری باشه پیمانهی باشه با اون پیمانه بخوایم بسنجیم یقینا خیلی سریع و طلب من طلب ممکن المکن در یک سال بتونه به اون قوه اجتهاد برسه برمند شروع کنه خودش سایره و بایست رو بخونه پس اینا از اهمیت خیلی بالایی برخورداره لذا به هر بحانه ماینار ما داری میاد یعنی به هر بهانه این بحث ها داره مسترمش بلقل مصیب حجیتان ولی اصابت و واسط تنفیه و روز الحجیه ولی اصابت واسط تنفیه سبوت الحجیه تلال قرم حالا این مدعاست این یک اغراست یا سغراست کل تقدیرین یک مدعاست اثباتش مهمی هم آره دیگه اگه اثباب اغلایی نباشه اثباب متعارف نباشه محلوکیت اغلایی نداره برای خودش اوچیته کسی در خواب یا حکم شرعی رو دید بهش گفتم پیانبر بهش گفت که این حکم شرعی اینه برای خودش اوچیت داره برای دیگران چیت نداره توی عمل خودش از نظر کبروی اگر کسی احکام شهر رو از واسطه و و رمل و جب رو نمیدونم خواب به بیاره و داره از نظر کبروی هیچ مناغشه درش نیست این نمبر کلام در سقران است که احکام شهر از این واسطه ها بده مگه پیغمبر بیکار تو خوابی بیاد در احکام رو به شخص خوابیده بگه راه خودش رو باید بره. یا نظر نظر صغربی تمامه حالا همین مطلب رو این جزره که امروز نوشتم این قسمت رو پشت صفحه. صفحه نوشتم به خاطر اینکه یادم رفته بود دو صفحه 157 این قسمت معلومه همین اشکالی که آقا فرمه برای خودش رسیت داره ولی اگر حاصل بشه ولی حاصل نمیشه خوا احکام رو در خواب و لابین باشین این دی شکی هم مثل اطفان های تازه به منفیل امروزی. اینا که نمین به اهام دسترسی ها از نظر کبرله میگه اگه بهششکار نرسید اینکه شما یک سط ماست بخوای بزنی به دریا دوغش کنی اگه بشه خوبه ولی نمیشه. این اگه در خواب ببینن مگه در خواب ببینن به لینات دسترسی ندارن احکام سیر خودش رو داره یعنی کسی تا خون نخوره خون دل نخوره به احکام دسترسی پیدا نمیکنه. ما خیال کنیم با جفر و رمل و, و اینها که متعارف نیست ولی یکی از بهشه مانعی نداره حسیت داره و همینو نوشتن و به وقتی بنابرای این بنابراین اگر تا کاش فلقه تا فرموده حسیت نداره آبازی عراقی قائل به تفصیل شده برموده منطقیزیت داره معذریت نداره و سید منتقام ازش تبعید کرده و آدرس اینا رو هم نوشتم یعنی از سید منطقه و نهایت الافکار اینها تو صفحه 155 پایینش نوشتم که مراجعه کنیم اونها وارد به تفصیل شدن و مشهورم که مدناشون عدم حسیته ولی از نظر فرقی میگن حسیت یعنی فوضاست برام مشهور فوضاست به اصطرابه و به هم و قطباشون با مرناشون نمی ولی که آشوفال به تا قاعده به عدم حسیلیت مطلبه و آغازی ها به تفسیر منتها نظر شماها چی میشه نیاز به تحلیل فنی داره تحلیل فنی گیرش در این اصابه است به خاطر این قطعه قطعه ایبش چیه؟ مشکل اساسی که اعلام تشخیص دادن و هم تشخیص میده همین عدم اصابه است عدم اصابه به معنای دوم و اغلاییه آیا این مرض حساب میشه یا مرض حساب نمیشه مشهور میگن نه این اسابه اقلایه معتبر نیست اصابه اقلاییه میگن معتبر نیست آغازه عراقی میگه در معذریتش معتبر نیست ولی کاش آشبال قطاع فتواهی به عدم داده بدون که دلیل براش میکنه یعنی ازش سوال شده و ایشون اینطوری جواب داده که اوچیت نداره مثل کسی را شک هم ولی حالا اینا نیاز به تحلیل داده تحلیلش چیزی که در جزبه ها دست در سقایی الان و بگیرید حتما مطالعه کنید اینه که ما سه تا عنوان دارم یک عنوان مستقاسیه و یکی شک مثل فخر دازی و یکم قطهای اینا سه تا عنوان اینها مثل کسی رو شک فی در باب صلات و تواف نیستن اینا سه تا مقوله عرفی و ارتکی و سه تاشون هم شازم یعنی هم وسواسی شازه و منحرفه هم شکاک منحرفه ولو امام با شککین باشه فرق دازی ولو قطع باشه این هر سه شازن شاز یعنی منحرف از وضع متعارف و غلایی یا حسیت داره یا نداره به یک نحوه دیگه بحث کردیم ولی حالا اون چیزی که الان تو این جزوهای قبلی بوده اینو الان بخونم والوجو و ویزاله این های واسطه در روز یا واسطه سبوته بنابراین این جمله رو باید ما بپذیریم که القطب المصیب حجته اون اسابه معتبره در خلاف من که میگن اسابه معتبر نیست ما باید قائل بشیم به اینکه اسابه معتبر به معنای اغلاییش یعنی موافقت با استکاذات و مناش و اسباب متارف و عادی بعدا بیان این اینه که کنیم واسطه در روز یا واسطه اگر اینها رو آقاین این طور پیش ببرد یک سال هم خدا میدونه نمی که شما تصلاف پیدا می به خیلی از مبانی ولو شما فیزاره کازه هم علا جمیع مبانی الموضوع در تفی امثار و سبق از تحب رضاله ها پر سابقه همه شخص دینا رو گفتیم تو همه جزوهای امسان. و محمب ها ان نهاننا که ذوابط به تشریط یات تعلیمیت و المختار و موضوع و در مقابل سيد صبر و و ولای مازنزن و ول اوصاف و آوارض که اینصاب المقام المقامام ح یالت ف او من اووازه حساب وث ذاتیشه یا عرض آارزیشه اگه شما اینار تحلیل کنید دیگه همه راه رو دستی دیگه وله حساب تو موضون او ملا کن یعنی ارون او کن بچ ها حال اینا رو در ال المته مزفرم مراجعه کنید الطق مزففر بین این اوثابق ز قرار گذاشته فهرستش نگاه کنیدار تو فهرستی که اخیراً منطقه های جدید داره تو فهرستش هست تو فهرستش هم عرض و وصف داره هم عنوان و معنون داره این دو تا خیلی بحث مفیدیه در المنطقه ولی خب مونده دیگه مونده یعنی ست در درصد مطالبش مونده و حض نشده حالا اونها منطقه بر محل بحث از اصافه از اعراضه و من المعلوم انه فعیلیت الهوز من نمایه به فعیلیت موضوعهی فالحجیت و فعیلیتها به موضوعها حالا من البحث موضوع الواقعی فهم الموضوع و مجرد طلقات یک گو او کاشفی طلقات دو گو محرکی طلقات سه گو اصاب طلقات للواقع نفس الامری شهار اول مناشه اهل مقلاییه اول مناشه اهزاتیه اول مرکب منهما، هما اول مقید بین هما کم تا بولی هشت تا و تمامش هم در کلمات ها هست ولی اینها رو شما بخوایی تحلیل کنید گیر یک مطلبه که این اصحابه واسطه در روز و یا واسطه در ثبوته اینو تشخیص بدید که هفتاشتی که میره کنام در خوب. اگه به covid chogha par ko jo هر professional nahi کجاش می‌خواد؟ خو؟ که شما او اخطاریه موعدکیت نداره. خب خب. حالا برای موعدکیت لازم نیست هست من هر من قبل پیدا کردم انجام بده. خیلی از چیزا رو قصد داریم انجام نمیدیم نه اگه کاشفییت بایمین یا اگه کاشفییت باشه مطلقا هر قصدی حسیت برانسان تمام میشه و اگه بخواد مخالفت کنه معذوره ولی در از مهم... مهمینه هر قصدی که محرکیت داره حسیت تمام. حالا شما در خارج تحریف بشی یا نشید مهمینی که قصد محرک باشه پس در چه موارد مورد میشه؟ وقتی که دایی ایجاد بشه، دایی تکوینی باشه یا دایی شرعی باشه. پس یک مقدار تنوع پیدا میکنه، هر قسمی نمیتونه یکسان باشه. آره ما بله. اینه همه تأیید همون مبناس دیگه آره اگه محرکیت بیارنه واسطه رو روزو میشه بعد اینه کشت از یک مبناس علمه هر خون که از سرها یک مبناس دیگه یک مبناس ما هیچون میدیم زیاد بحث کنیم به که به صرفش نمیرسیم ولی اگر طلبه به یک اشرافت تام برسه که خودش بتونه واسطه ها رو بده این دیگه نیاز به درس یه کن چرا این همه سی سال درس خارج میرن چون هنوز تشخیص نمیدن واسطه در اون روز چیه؟ واسطه در ثبوط چیه؟ اون تشخیص نمیده هر روز درس برای جالب و تازگی داره هی hey, میره دفتر عوض میکنه دفتر 137 و 138 و هفتو سد می سی و هشتو ی مینویسن صرفههای آغا رم تشخیص نداره اگه تشخیص داشته باشی یک علفش کافیه برای اینکه همه چیزو بفهمی او جامل حقیقی او جامل انتظایی اینها ها ادواری در محل بحث فیهر خلاف قبضه ها شریف مازندرانی را ملاحظت ظاهر دلیل من دون ای استظهار او استنباط لتشکیس الموز گفته به ظاهرش نگاه کن گفته از قطع و مصیب از تو جاوردی ما نداریم هر قطع و حدیت داری خاصی در لفظ و مدر قطع و حساب در قرض نیست، در لب نیست، بنابراین زاهدش گفت هر قطبی هویتو. چه این کلامه ماذنه؟ معروف، معروف همه میگن دلیلی که حالا گریوان میر شریفن نما شده. ما از معروف این معروف، معروف میگن قرض به ما هو و قرض بچه. هیچ شنابو مصیب بودن و محضر که یه از بودن و چیز دیگه داشتنی نه ایش کدامش آره ده. ایشون اومده یه دلیل اقامه کرده بین که ما ظاهر نگاه میکنیم اگر صورت المصیب بیاد میگیریم این حسیت تغییری است، ولی اگر از باشه ازا تغییره باشه اون شرط میشه قبلا تفیشت اونها رو گفته بیاد. و حاضر قوم زحیف و جده و اختار از سید و شهید از نظام تحبت بین سبب قلقید سبب یا قید اگه قید باشه شیستیت ترهیدی میشه سبب باشه شیستیت تعلیدی میشه و قد سراح سید و شهید به لجوع الى تطویق قاعدت اقلیت فلسفیت فلم اون راحت کرده خودشون این ندعرز یتعدد به تعدد و ولا یتعدد به تعدد سببهی آیه ای از فرسفه را آورده در اینجا منتبه کرده خودشون راحت کرده و این ندعرز یتعدد به تعدد موضوعه ولا به سببه پس این آن آقاین حفظش کنند آه. یعنی هم باید این مطالب حفظ بشه هم هضم بشه آیه ای که فلاتفه میگن چیه اینه باید حفظ کنید کاهید ثانی مبناش بر کدام دلیل فلسفی این اینا رو باید حفظ کنید شهید ثانی گفتن به شهید اول هستند تو شهید سعد ثانی محمد صادق واقعاً در مشوقه الن الاحراز الخارجیه دهم معروز و معروز لهو ذل اعراض مولجه ان نقلعرض اناقات به یک اونلبگو معروز ها و وجود دو عرضه وجود و نتی یا حالا وجود نحتی چیه؟ المجباصولی مراجع های وجود نتی چیه؟ در مقابل وجود محمودی اینا دیگه نمیتونید همه رو ب بگیرم. و من یک کتاب در افدستان معرفی کردم اون رو شما هر چقدر بیشتر مراجعه کنید بیشتر تش نمیشید اینکه مطالبش رو بفرید چون هنوز هست نمیشه اون از یک سال دو سال هم که مراجعه کنید هنوز ابحان داره. این خود تو مراجعه کنید و یعنی ما به وجود رابطی لب رابط بلعرازو ها لنفی محل و محله و الموضوع و اعراز خارجیه علتون و سببون ایزن غیر از موضوعاتشون اعراز خارجیه غیر از این موضوعی داره یه علتی هم داره که الحرارت المسببت ان النار او شمس او الحرکت فا ازا تعدد الموضوع یا تعدد الهور دون ما تعدد از سبب که ازا عرضت الحرارت و علال ما من جهت النار و شمس بلکه بعد اگه طوری باشه یک حرارت، شما یک چرا رو یک کتبی آب رو گذاشتی سه تا گیرش آتیش روشن کردی و حرارتش یکیه. ولی اگه سه تا بخاری باشه اینا سه تا حرارت. بخواین سه تا اتاق الان داره گرم میشه. این حرارت خیلی از اون حرارت. خیلی من حرارت‌ها تلا و ماجرا بگه اینا رو حزمش مشكله، خب این باید برگرده، در فلسفه اینا رو حلش کنه و میتونید از آموزش فلسفه که فارسیه و خیلی هم نوشته شده، بخونید و حضمش کنید. لازم حتما بدون نهایی بخونید که در نیارید. آموزش فلسفه مالای مصباح خیلی خوب نوشته شده اونو بخونید تا معلوم باشه چی میخوان بگن فیندن حرارت لا تتعدل و ازت تزه تبریب و قاعدت فدع اعراض خارجیت مقبولیت فلسفیه یمکن تبریب و خصوص احکام شرعیت ایزن تا بقیم نعلوم نعلوم و خاطر اینکه احکام شرعی با اعراضیش فرق نه نمرز او نمرز و انه لحقام شریعه که الهراز خارجی به نسبت موضوعاتها موضوعات ها و نقول انه لحقام شریعه لا تتعدد به تعدد اسفاب ها بل تتعدد به تعدد موضوعات ها و به عبارت اخراد این نه لحقام شریعه این نما تتغیر به تغیر موضوعات ها لا به تغیر اسفاب ها و المراد به六صم هم غا و ایزا تغییر ذاتن او انوانن ذاتن مثل استحاله انوانن مثل انقلاب اعتبارا مثل سقوط پول از اعتبار این ها در فکر مکاسب گفتیم و همونه. این همونه برای اینکه آقا آقایی یادشون نبید نوشتم تغییرم رو بود و سبب خلای تغییرم مراد از تغییر چیه؟ تغییر یعنی عدم و ها و عدم توفرها ها و عدل و تغییر در آب آب قبلا زلال بوداره متقیید شد با نجاست بعدا ما زمان تغییر کردیم یا به علاج یا به بستن آب کور امثال اینها یا به زوال تغییر منعن به نفسه زوال تغییر شده حالا نجاست میره یا نجاستش باقیه با؟ بنابراین اینکه تغییر سبب باشه کما علیه از سید و شهید نجاست باز باقیه پس برا خیلی از فتاوانی از به مبنا داری ما بیان بگیم قبلا زبار تغییر بوده قبلا تغییر بود حکم نجاست داره. الان تغییر رفته حکم هم باید بره این بنابراین بصدا که شهیر ثابت نیست و خیلی از معاصرین که طرفداری داری نظریه ولی بله حیثیات و تعلیلیه اسباب حدوثیه حیثیت تعلیلیه اسباب حدوثیه یعنی حادث میشه حکمی میاد بعدا خودشم بره باز حکمی میمونه مثل نقشه معمار که حادث میشه ساختمان ساخته میشه بعدا شاید نقشه پاره بشه از بین بره ولی ساختمان باز دیگه تا آخر میمونه اسباب حدوثیه هیسیات حقیقی اونطوره اون حرف مشهور بود اون حرفها رو میزنم بعدا یه بازار کخته شد بعدا گفتن که هیسیات دو قسم بلده مشکور و شریف العلم ها همون حرف رو می دیگه میگن تغییر اومد نجست شد تغییر رفتن اجازت باید برید برای چه مونده میگن نه این دیگه نمیره. تغییر یک کار کرده که خودش هم بریم میمونه این خودمسن هم شهر نباید باشه اگه نباشه اگه تغییر نبود نجاست از کجا بیاد آب از کجا نجس بشه این موضوع تغییره موضوعش بیاد و هر وقت موضوعش بیاد که اینطور میفرشی من ناامید میشم منم ناامید بشم درست کلان تعبیرش می موضوع نه این آب که نجس نیست آب نجس شد با چی نجس شد با تغییر خوب. تغییر باشه مشهور میگن تا تغییر هست نجاست هست شایعت میگه و مشهور میگن اگه تغییر باشه نجاست هست تغییر بره نجاست میره شایعت میگه طور نیست تغییر که میاد نجاست میاد خودش هم بره نجاست میمونه چرا چون تغییر سبب بوده و حکم با تغییر سبب و انتفاع سبب منقضی نمیشه مبناه است دیگه مبنای ایشون اینه ولی مشهور میگن نه اینجور نیست تقاییر اومد نجس شد حالا تقاییر رفته یا خود به خود رفته یا علاجش کردیم خور باید بره ایشون قایل نیست معلوم شد خیلی فکر نکن خیلی فکر کنید فکر آفاق زیایی داره مسائل خیلی ساده است الان ببین اینا رو لزومی ندار ما خلتش کنیم من میتونم اینا رو الان ترمیزش بگم ولی خب نه فرصت از همین که ذهن ببین همیشه تو یک وادی که میفته ذهن باید تو همون وادی بره ما بیام شاخ شاخش کنیم خراب میشه الان تو زهن... ما الان بین حسیت تقییدیه با تقییدیه داریم بحث حیثیات تعلیلیه علت جعل حکمه بهانه جعل حکمه تغییر بهانه شد شارین رو کرد معتبر نیست دیگه معتبر نیست معتبر نیست اساسا حدوثا یعنی اسباب حدوسیه، علت جعل نجاست چی بود حالا دیگه علت جعل نجاست چی بود تغییر از وروحشه که مخلوب میشه چون خیلی واضحه مخلوب میشه بله و تعلیلیه از و حدوثیه و علالان حدوثیه اگر در اصول فقر یک مقداری بی انصاف ها خوب تدریس کرده بودم اینطور نبود که طلبه تشنه دست و نیاز داره چقدر وقت میذاره ولی خب پایه ها سوزن. یه ترجمه سوری از رو شهرها ها آقا این آدم به کدوم محکمه بگه آدمی که با شرح فارسی بخواد این تدریس کنه ولو مرتبه بیستم تدریسش هم باشه فایده ای نداره یه مقدماتی باید باشه تمام این واسطه‌ها خدا میدونه تو کلمات مظفر و مده به مرات بکرده به خاطر اینکه خودشون خود ایشون مشفوع به کلمات اصفحانیه اصفحانی خیلی به اینا رو بکار میبره مظفرم آورده ولی ما برا ما حل نشده و برای خیلی حل نشده برای خیلی حل نشده, خیلی حل نشده. با الان یه مقدار احساس میشه که زنگینه ولی تعمل کن خیلی در اطراف این که من میگم این فکر نکنم همین که نوشتیم همینی حفظ کنیم اگه کسی رفت اینا رو گفتن آقا ایراد داره اشکال داره من جوابش میدم. اگر شما یک نقل پیدا کردید گفتن آقا این که این نوشته این داره من خودم جواب میدم دقینا پیدا نمیشه و کسی اینا رو نمیگیره بخواست واقعیت همینه حیثیات تعلیلیه از فاق به یعنی علت جعل حکمه نه علت فعلیت مجعور در مقام حالکن دور و مدار ها حدوسن این در مقام زنه فقط این در حالا یخ و به نجاست ما به مجرد به حصول حدوس ت ریه و یاپول ال ما مطبیه نجستان به صورتوق آورده او ما اضطب یا همجهد یا به اون صورت آورده؟ و اینکه لسان ماخبر نیست بر خلاف مشروب چه به اون لسان باشه چه به با این لسان باشه؟ لسان اندن مشبور معتبره که میگن اگه المتغیر بگه حیثیت تغییلیه است اذا تغیره بگه میشه حیثیت تعلیلیه. نه اینو 600 قبول نده میگه خود تغییر مهمه تغییر سبب نجاسته حالا میخواد با وصف بیاد میخواد با شرق بیاد خب اینه ها یاد بگیم ببته وقتش گذشتان اینا مال حلقه دو حلقه یک حلقه سه اونا که اصول پخه مزفر میان خیال بکنم آقا بعدا به چوب رساله بخونید نه به در کفایی بخونید شما باید فرض خونی اصلا رساله‌ای نیست و در کفایی در کار نیست وقت بذار خوب تدریس کن دیگه جنایتی بالاتر از این ما جوانی یک طلبه رو بگیریم ازش این با کشتن یک نفر فرق نداره که دو سال سه سال بیاد بشینه ما براش ترجمه کنیم و خودمون هر به تشخیص ندادیم واقعی میره بعد هی حواله بدیم به بعد در کفایه هم حواله میدم به درست خارج و این ماهی تصفه هیچ درس خارجی به متانت کفایی نمیرسه کمان که هیچ درست خارجی به مکاسب نمیرسه مکاسب اونقدر مطالب داره ما بعضی از موارد درست خارج خسته میشدیم مطالب خوب ناب مکاسب خیانات مکاسب مونده آقا گیر داره به یه چیزای دیگه. خب مکاسه رو بیایید بگید حتما باید اون چیز خوبی گفته ما همانه بگیم آره یه چیز دیگه بگیم و ها کذا فلحیسیت و تعلیلیه علتان حدوسیتان جعلیه و تکون ملحوظتن پی مقام جل که علتان حدوسیه و یو سم ما به و من الواز اندال حکم لاید و مدار حکمت موجودن و عدمه فی مقام المجموع بینا مهم ما فی مقام المجموع لا یدور مداره فتقیر ذخیر سن نجاسته حدوثاً لا بقاءً و سبب حدوثی عیصیه تعلیلیه فلای تغیر هم نجاسته اذا زال تغیر بنفسه ای او به اداته لامن بقا ارواب من نجاست لام یکن مسنا دنم لب قا اتغایی هب توزا ولا اندازواله کاله حکم من إلا حدوس التغایی رخهت تغایی سب فی تغایی عل الارض ای تغایی عل التغایی تغایی را بندا داور تغایی لام موضوع نجاس سبوتن و اثباتن و حدوثن و بقاان و اما موضوع همین آبه همین آب موضوع سبوتی اثباتی حدوثی و بقای و اما تغییر فهو سببون فی مقام جلد به سبوت نجاست آب که نجس شد با تغییر دیگه اون پاش نمیشه بنابراین شیسد چی میگه وقتی که اینه ما علاجش کنیم یا زوال تغییر بشه اینو باید جواب بده جواب نداد اگه ما اومدیم همین آب رو ریختیم تو آب کور و مضمهد شد ایشون باز واهد به میشه لذا ایرادی که مبنای یشون داشته باعث شده ما مبنای سوم مطرح کردیم و من المعلوم ان زوال سبب لا یعنی زوال الحکم یعنی مستظم در حال حکمی است چیو؟ خواهید باید باید باید یک درمون آب باز نجسه به خاطر اینکه به خاطر آب دیگه باید بگه آب برگرده به استحاله و انقلاب استحاله و انقلاب رو قبول نداره خودش میدونم. الان آب رو که ما علاج کردیم ریفتیم در یک آب که استحاله شد دیگه مزمحل شد استحاله روشون قاید نگید منابرای گیر میکنن آخر یه جای گیر می ماند خب حالا در آب شما میتونی هر حط رو بزنی که می میشه این هر ها رو بزنی آب رو برداریم تو استخ ولی در چیزهای دیگه که نادرس شده و قابلیت انتظار نداره شش صد کی مخاطب بشه. علم معیار والجوهری اند سید شهید موجه و هر الفرض و تفریق بین ما یکون سببن للهم و قیدن الموضوع این خیلی مهمه اگه کسی واقعا اینو هضمش کنه شش ماه جلوتره. یعنی طلبه فقط همین رو بفهمه دل بله تا شش ماه نیاد شهریه جایزه بگیره. همین یک مطلب کافیه که ما بدونیم شید صدر قاعده به تفریق جوهری بین سبب حکم و قید موضوع شده همین کافیه اگه کسی مرنا رو بفهمه خیلی پیش شده فلماستت و ازاکانت سببا تکومن الهیسیات تعلیلیه و ازاکانت فیدن معفوزن فیل موضوع میشه تهیسیت تغییلیه کما ازا تحول البول و بخار او تحول خشب الا فهم و زغار فلا یخفا ان البوریت خصوصیتون مقومتون للحکمه به نجاست و تکون قیدن راجعنه در موضوع این هم از نظر سغربی بوریت خصوصیت مقومتون به نجاسته به خلاف نجاسته که در آبیو و از زابط تامون من سلکوب را یعنی کلام شید المفصلت بین سبب و قید یعنی تخصیلش از نظر کب روی تامن ولکنهو یعوزهو یفقدهو الملاک بی تشخیص صبر سبب رو از قید از کجا تشخیص بدیم یه مهیار این طوری میخوایم و الان بیایم بگیم اگه سبب باش این طوره قید باش طوریه این از نظر کب روی ولی به درده اصولی نمیخوره اصولی موضوع رو میخواد تشخیص بده که تشخیص سبب از قیل چیه در کلمات شیستر نیمده وان مثالی که زده به تغییر خب تغییر رو انسان زود منتقل میشه میفهمه ولی در جاهای دیگه چی میخواد بگه؟ لذا که تشخیص سغرا رو نفرموده فسته یدو شهید لم یعته به تن سغراوی به تشخیص موارد. و تفریق الکبروی بین سبب و القید لا یعنی تشخیص السبب، عن ان القید فی مقام دثبات و استنباد و نحن به حاضیتن الا قاعدت اثباتیتن لتشخیص صبران ولی قول صالصن فی المقام یکی به جهتین الکبرویت و صبرویه و بین الموضوع و الملاق فی مقام دثبات بعد ثبوت الفرق بین هما فی مقام ثبوت تول قاعدتو لکاشفتو اما قامل اثبات قاعدتون اثباتیه فهل واسد سبوتیتون او روزیه المال متغییر نجسون الینون نجس یهنون و بیوها بل قصف المصیب حجتون اینو چطور تشخیص بدیم؟ معیار چیه؟ معیار تشخیص صغربی این خیلی مهمه که در هر موردی ما بتونیم یک جمله ای رو چون طبق این مبانی باید فتوا بیدیه مبنا همیشه به این صورت در میاد یعنی مبنا میشه القطع المصیب حجتون این مبناست تفقه این مبنا شما میتونی فتوا بدید حالا المصیبی که در این وسط اومده واسطه در روز یا سهوته اینه تشخیص بریم مبنا پنفقهه بنابراین هر فتوایی منتظر میشه برای این بدون اینکه که به زحمت بدون اینکه از اعاذم مشهور بقای به ترسی یا واهمه ای داشته باشی از علام ماورایی نه شما تشخیص بدی که واسطه که حساب باشه واسطه در ثبوت برابری هر قطع و حجیت داره من جمله قطع قطا یا عروز اگه عروز باشه قطع قطعی نه حالا آخر وقت اینو دیگه نمیدوسم از روش بخونم جلسه بعدی نشاملش را می میخونیم از نوشتم میخونم که که اینکه میخونم چون مست بعضی از ابحاظ رو داره اونها مهمه مسئله که میخوام بگم تحتش کنن آقای اون، اینه که ما یک مصفاسی داریم یقینا عملش باطله قطعشم رو نداره از نظر عقلی و شرعی ثابته که یعنی عملش باطله قطع داره شکم داره شکم داره نوشتم تو جزبه های امروز میبینید نوشتم وصفاسی هر رو دو سوزه. وصفاسی قطع داره به عدم صحت. قطعش در طرف چیه؟ الزامه به اون حکم الزامی قط پیدانه میکنه قط به عدمش داره یعنی هیچ قطع به طهارت پیدانه میکنه ارتباطی به ترخیص هم نداره در مقابل وسواس شکاک شکاک هم کسیه که به هر احتمالی اعتنا میکنه احتمالاتی را که یقین داره اغلاویش اعتنا نمیکنن این اینه اعتنام کنن اینه میگن شکاک و برای شکاک به سالی زدن به فخر رازی در مطالبی از تفسیرش آوردن اونا خوندنیه این بخونن برای این تفسیر فخر رازی رو نگن به دست نمیخوره این طور نیست خیلی از مطالبش رو اینجا نوشتم در حد یک سفر که این تفسیر ماهیتش چیه و چی میخواد بگه و اعتقادش به اهل بیت علیه در این کتاب هست و بعضی از مثالاش رو نوشتم ولی بعضی از فلطات هم داره لعن شیعه روافض همسا اینا رو هم داره اینا خیلی از معاصلین توضیحش کردن که از قلط نصاخه بلی اینطور نیست من اینجا نوشتم که و ما یجد هلقاری احیانا فیهاز از صفر الازین من تحامل هی و لعنه هم به عنوان روافض کمان که یه مثال جد دوازد صفحه 21 فخو من فلطات هی و سلیاتهی و قروبهی و زعفهی و تبلیدهی من آبائه که لا یلیغ و به قدم کاتب عدیب و اندامت نرهی اینا شایستی توضیح هم نداره یا و... یعنی واقعا از اشتباهاتش شد ویده تفصیل خوبیه این مال شکلات در مقابل بسراسی نبا با بخونید و سکم این نفر شاست دفتاه قط یعنی چی؟ گفتن هایی که کسی الگت باشه بعضی ها گفتن هایی که سریع الگت هن ساده لو هن قط چی قبول می بعد خب این اصطلاحات اصولی ما نیست ها یعنی این کسی که قط اش از اسباب غیر متعارف باشه در یکی از صفحات خواستم بنویسم که این ها یک منشهی داره ما بیاییم بگیم قط ها شخصی که مناش اوقلایی و متعارف برا قطعش نیست اینه گفتم داریم چرا به از نظر اختکازی و, و اغلا شکاک به شخصی میگن که من ش... شکش ضعیف در نهایت زرف شکاک به کسی میگن که شکش ضعیف قطا هم به کسی میگن که منبع قطعش ضعیفه قد طأ و فقط او چرا به سبب ضعف مبادی و اسباب قطعش وقای این از نظر ادبی درست هست یا درست نیست از نظر ادبی هم درسته قد و قد این وسط عمر تشدید شده بهش از نظر اصطلاح ادبی میگن تضیف دیگه مشدد تضیف تزعیف تضیف ظاهری در این ماده واقعی از تضعیف باطنیشه مثل ز الله خدا از عبید نیست یعنی ضعیف ترین ظلم در حق خدا تصور نمیشه یعنی اون ضعیف ترین ظلم رو هم نداره اینم هم از همون باب قد تا منزع و فقط او از کجا فهمیدیم از تشدید وسطش عین و قش تا به شکراک هم همینطوره و اینطوری مطالبه کنید تا باقیهش انشالله شمبه برخم بود اونه که قول اپن مالک اونه که کاملی اونه که کاملی اونه اینها ویخت برای شما با بود آره پس این روحه چاره‌ای هستی که کاری را که بخواهی انجام بدهی، اگر اجازه بدهی که وضعیتش بشه، بده باشه، من با تو، این ماجراهایی که